أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله على على الطيبين الطاهرين لا مولانا وصاحبا بغية الله في الأرضين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة ليما حافظا مقايدا ناصرا دريلا عينا حتى تسكنه أرضك كدواء وتتمتعه فيها طويلة السلام علیکم یا موراتنا یا فاطمة الزهراء السلام علیکم یا اهل بیت النبوه فیلسوف بعدی که در یونان باستان بعد از زنون ایلیائی مطرح است و مورد توجه است و از کلمات او می‌خوایم در بحث بحث شخصی استفاده بکنیم اومیدوکلس یا به تعبیر دیگر امبازقلس که در سنه چهارسد و چهل و چهار قبل از میلاد تا چهارصد و چهل سه قبل از میلاد این فرد زندگی میکرده عبارتی داره به این تعبیر که این رو کاپلستون در صفحه هفتاد و هشت جلد یکم ذکر میکنه صادلوان که افکار کوتاهی دارند میپندارند که آنچه قبلا نبوده است به وجود میآید یا چیزی میتواند معدوم شود و مطلقا از میان برود میگه که اینی که ما تصور میکنیم که از لاشه مخلوقات به وجود آمده اند بحث خلق رو داریم این بحث ساده لوهیس از اینکه چیزی نبوده و بعد چیزی به وجود بیاید این ساده لوهیس بلکه همه چیزها از چیزی که به وجود آمده و وجود دارد به وجود آمده زیرا چیزی نمی تواند از آنچه به هیچ روی نیست به وجود آید و محال و بی سابقه است که آنچه هست به کلی از میان برود پس نه چیزی به وجود آمده چیز جدیدی به وجود آمده و نه چیزی از بین می رود زیرا همیشه در هر جایی که کسی آن را نهاده است خواهد بود که از این می شود استشمام این بحث تجلی و بحث وحدت شخصیه رو به نحوی کرد که البته شد که اینها در فضای مباحث الهیاتی نبودند. درسته که تعابیر خیلی شبیه به بحث وحدت شخصی وجود هست اما خب در تطبیقش اینها معمولا به مباحث مادی این رو تطبیق دادند. بعضی ها اون واحد رو آتش، بعضی آب و بعضی چیز دیگری نامیده بودند. لذا خب شاید این حرفها و این مباحث که همون مباحث وحدت شخصی وجود استدلال همان استدلال است در تطبیقاتش خب نتوانیم به نحو قط بگوییم که اینها تطبیقات الهی دارند و بلکه بعضی از موارد شواهدی هم وجود داره و عباراتی هم هست که اینها تطبیق مادی دادند. اما خب استدلال همین است که میگوید چیزی که هست به این اشکال به وجود می به این اشکال دیده می شود این عالمی رو که ما می بینیم اینطور نبوده که اینها نبوده باشند و بعد به وجود آمده باشند همه چیزها بلکه اینها از همون چیزی که به وجود آمده از همون چیزی که به تعبیر درست وجود داشته پدید آمدن که میتوان این رو مشابه دانست با بحث وحدت شخصی وجود که فقط وجود واحد وجود خداوند متعال است و این وجود واحد تجلیاتی دارد رضا در بحث وحدت شخصی وجود بحث خلق مطرح نیست بحث صدوری که در فلسفه می گویند مطرح نیست بحث تجلی مطرح است بحث ظهور مطرح هست که اینها ظهور همون وجودند تجلی همون وجودند لذا این تعبیر رو در ها هم میبینیم که بله این رو به ذهنش رسیده با اینکه جزء مطالب و افکار ابتداییه فکر بشری هست اما خب این حرفها هست که بله باید چیزی باشد که از اون چیز این عالم پدید آمده باشد و همینطور چیزی هم معدوم نمیشود یک وجود است یک حقیقت که به این اشکال پدید آمده فیلسوف بعدی که حدودا 500 قبل از میلاد مسیح هست که ما از اون یاد میکنیم که اون آناکسا هست هست یا آناکسا که بعضی تعبیر کردن و خواستن این فرد رو یک شهروند ایرانی معرفی بکنند و حتی بیان کردن که این با سپاهیان ایران به آتن آمده که این فرد با نظریه پارمنیدس موافقه که تعبیرش هم این است که یونانیان به وجود آمدن و از میان رفتن را درست نمیفهمند. زیرا هیچ چیز به وجود نمی آید یا از میان نمی رود بلکه آنچه در کار است اختلاط و افتراق است که وجود دارند این هم این تعبیر رو داره که چیز جدیدی خلق نمی شود چیز جدیدی ساده نمی شود همه اختلاط اون چیزهایی است که به وجود وجود داشته و هست که این هم از شد که مشابهتش با بحث وحدت شخصی وجود در عبارت دیگری میگوید چگونه موی می تواند از آنچه موی نیست ناشی شود اگر مو بخواهد پدید بیاید حتما باید موی باشد و از مو پدید بیاید یا گوشت از آنچه گوشت نیست خب این رو با عبارت بالا بخواهیم کنار هم بذاریم معناش این می شود که این حقایقی که همه الان هست و از چیزی بوده که قبلا به وجود آمده اینها یک حقیقتند نمی حقایق متعددی باشند این رو کامل سن در صفحه 83 سه ذکر کرده باز عبارت دیگری رو در همین صفحه ذکر کرده همه اشیاء با هم بودند نامتناهی هم در عدد و هم در کوچکی که به تعبیر وحث وحدت شخصی وجود قبل از تجلی قبل از ظهور اون ذات الهی بود که ذات لا تعیون و هیچ صفتی حتی در اون ذات وجود نداشت و از تنزل اون ذات از تجلیات اون ذات صفاد و بلکه این عالم پدید آمد اون ذات لایتناها تبیرم همینطور همه اشیاء با هم بودن نامتناهی همه به نحوه مندمج بودند این تعبیر هم در بحث وحدت شخصی وجود هست نامتناهی هم در عدد و هم در کوچکی حالا از اندماج چه بسا تعبیر به کوچکی شده زیرا کوچک هم نامتناهی بود و تا وقتی که همه اشیاء با هم بودند هیچ یک از آنها به سبب کوچکی نمیتوانست متمایز باشد تمایزی حقیقتاً وجود نداشت میشود این تعبیر رو از این کرد که چقدر مشابهت دارد با بحث وحدت شخصی وجود. اگر تطبیق این کلمات رو بر مباحث مادی نداشتیم می ما اینها رو هم به نحوی قائل به بحث وحدت شخصی وجود بدانیم. تعبیر دیگری دارد به این عبارت که همه اشیاء در کل هستند. باز تعبیر دیگری دارد در هر چیزی بخشی از هر چیز هست همه اینها یک حقیقت دارند حقیقت متفاوتی ندارند آن چیزی که در چیز دیگر هست در چیز دیگر هم از حقیقت اون چیز غیر و چیز دومی در این وجود دارد اشیائی که در یک عالم عالم هستند با تبر آنها را از یکدیگر منقسم نکرده‌اند نه گرم را از سرد و نه سرد را از گرم شاید بشود از این عبارت این برداشت رو کرد که بخواهد بگوید که اینطور نیست که اینها حقیقتا متمایز شده باشند کاملا یا به نحو اجزا در آمده باشند خب این برداشت و چه بس بسا از این عبارت بشود کرد که منقسم کردن و تبر خب حقیقتا دو جز مجزا و جدایی از هم پدید میآید. اما اینطور نیست عالم که خب این هم مشابه بی مشابهت نیست با بحث وحدت شخصی وجود که اینها تجلی هستند و حالت افتراق و تمایز حقیقی بین اینها وجود نداره در جای دیگری سخن از اختلاط همه اشیاء رو میگه اختلاطی که عبارتش اینه از تر و خشک و گرم و سرد و روشن و تاریک و از مقدار زیادی خاک که در آن بود که این تعابیر خوب بسیار تعابیر مادی است و از تعداد بیشماری از بذرها که هیچ شباهتی با یکدیگر ندارند زیرا هیچ یک از سایر اشیاء هم مانند دیگری نیست و چون این اشیاء چنینند باید معتقد باشیم که همه اشیاء در کل هستند از طرف دیگر یک نگاه کسرتی به اشیاء میکنه میگه اینها خوب با همدیگه فرق دارند پس باید قائل باشیم که همه اینها در یک کلی جمع شدهاند، یک کل فراگیری وجود دارد که همه اینها رو گرفته که ما دنبال همین هستیم که بگوییم که اصل این استدلال، اصل این فکر یک فکر ابتدایی است که در همه اینها موجود بوده فقط خب در بحث عرفان نظری مصطلح اینها تطبیق داده شده به خداوند متعال اما خب در جاهای دیگر در این افکار قبل از میلاد مسیح چی در یونان چه در هند خب های دیگری نسبت به اینها داده شده که البته در هند کما اینکه گذشت حتی تطبیق به خدای واحد داده شده بود بعد صحبتی از نوس میکنه تعبیرش اینه که نوز نوس چیه؟ نامتناهی و خودمختار است و با هیچ چیز آمیخته نیست بلکه تنها و به نفسه و قائم به خود است همه اشیاء که در کل هستن اما یک حقیقتی هست که اون نوس هست که هم نامتناهی است حدی ندارد خودمختار آمیختگی با چیزی ندارد و تنها به نفسه و قائم به خود است بعد در مورد همین نوس در تعبیر دیگری میگوید لطیفترین و خالصترین چیزهاست حالا در بحث وحدت شخصی وجود الله خواهیم رسید که اینها لطیف را به همین معنا ترجمه میکنن لطیفی که در قرآن آمده یک چیزی که بسیار ساریس و خالص حالا به این تعبیر که لطیف در همه یشیاست ساریس در همه یشیا اینها خب نوس رو هم همینطور معنا میکنه بعد در تعبیر دیگری در مورد همین نوس آمده او همه گونه علمی به همه چیز دارد و صاحب بزرگترین نیروهاست باز در تعبیر دیگری میگوید در آنجاست که هر چیز دیگر هست هر چیز دیگری که شما فرض بکنید تو همون موتن اون فرد هم اون نوز هست حتی نمیشود ما بین اینها تفکیک بکنیم در خود وجود اون فرد هم خب این نوز هست در آنجاست که هر چیز دیگر هست در توده احاطه کننده که خب خیلی تطبیق داره با بحث وحدت شخصی وجود که از مجموع این عباراتی که در مورد نوس آمده شد بشود اون مقداری رو که میگوید این تنها به نفس و قائم به خود است با هیچ چیز آمیخته نیست خب اون مقام هویت غیبی خداوند متعال که در وحدت شخصی مطرح مقام لا تعیونی رو تعبیر کرد و اینی که در هر چیز دیگر است در توده هات کننده خب بحث کسرات رو ما بتوانیم تطبیق بدهیم به این حرف رضا ببینیم که خب عبارات بسیار مشابه هست و تعابیر دیگری هم در مورد اینها هست که خود کاپلستون از مجموع تعابیری که این فرد در مورد نوس داره در صفحه 86 این نتیجه گیری رو میکنه که نوس در تمام اشیاء زنده آدمیان و حیوانات و گیاهان حضور دارد و در همه یکی است که این برداشت رو از مجموع عباراتی که خونده شد و بعضی دیگری که خب نیازی به ذکرش نبود برداشت میکنه که خب خیلی تطبیق تام داره به بحث وحدت شخصیه وجود که حضور تام و تمام در همه اشیا در موجودات زنده، آدمیان، حیوانات و گیاهان. دیگه خب بعد از این فرد یوارشواش خب فرقه های دیگری ظهور پیدا میکنن، اتمیان میآیند، سوفسایان میآیند که خود اینها افراد متعددی هستند که خب در اینجا جه ها یوارشواش اون جنبه های مادی ظهور بیشتری پیدا میکنه تا به فیلسوف های بعدی از جمله سقراط میرسه که خب در سقراط هم مباحث دیگری مطرح هست که خیلی حالا مباحث اینچنینی شاید در کلمات او اون مشاهده نشود یا کمتر مشاهده بشود این تعبیر رو و این برداشت رو هم خود کاپلستان کرده که لیکن میتوان در او تمایلی به تصور خالستر از خداییگانه تشخیص داد بدین گونه. بنابر نظر سقرات معرفت خدایان محدود نیست آنان همه جا حاضرند و آنچه گفته یا کرده شود میدانند که خب دیگه بحث خدایان متعدد رو طرح میکنه و دیگه از اینجور بحث ها کمتر سراغ میگیریم تا فیلسوفهای های بعدی و فلاصفه بعد از میلاد که خب در اونجا هم آثاری رو و کلماتی رو در رابطه با بحث وحدت شخصی وجود پیدا میکنیم که نیازی به ذکر اون نیست و همین مقدار که معلوم شد که در ترین افکار یونان باستان که چه بسا اینها رو میتوانیم در مقابل ادیان پخته الهی که تا اون زمان ظهور کرده بودند از جمله عدیان الهی اینها رو بنامیم که کما اینکه اشاره شد اینها افرادی بودند مادیگرا و حتی بعضیاشن دارای صفات ناپسند که نمی‌توان اینها رو جزو انبیا یا مرتبتین و انبیا اینها رو حساب کرد. ادا میبینیم که اولین چیزی که ممکنه که به ذهن ساده اون انسان اولی هم خطور بکنه بحث این است که یک وجود باید باشد. از لاشه وجودی پدید نمیتواند بیاید و بقیه چیزها هم از افتراق و اتحاد اون وجود یا اون وجود یا به تعبیر دیگر از تجلیات اون وجود پدید آمده است در فلاسفه حتی قرون اخیر میلادی هم اینها رو ما میتوانیم این حرفها رو مشاهده بکنیم حتی در بعضی از فلاسفهی که هم همعصر ابن عربی هستند اما خب در قرب زندگی میکنند مشابهت های بسیار فراوانی در خود خصوص بحث وحدت شخصی وجود و حتی سایر مباحث مطرحه در عرفان نظری مستلح ما مشاهده می‌کنیم که اینها خوب بچ شباهت‌های بسیار زیادی با همدیگر دیگر دارند لذا بعضی ها در تلاش این بودند و حتی از موافقین بحث وحدت شخصی وجود شواهدی رو سعی کردن جمع بکنن که منشأ اینها رو واحد حساب بکنن که مثلا خود هند تأثیر داشته است در خود یونان و اونها این افکار رو از هند گرفتهاند و خود مسلمانان هم در اون ابتدا هم با هندی ها مثلا اینها اختلاط داشتند هم با یونانی ها و این افکاری رو که در مسلمانان و اونهایی که منصوب اسلام هستن در وحدت شخصیه و تصوف میبینیم از اونها گرفتن که خب نیازی به بحث در این مورد مشاهده نمیشه و همین مقدار شاهد برای بحث وحدت شخصیه وجود در یونان هم کفایت میکنه که البته در مکاتب دیگر از جمله در ایران باستان هم ما شواهد متعددی ممکنه پیدا بکنیم که دیگه حالا از ذکر اون به خاطر زیغه وقت پرهیز میکنیم یک اشاره مختصری هم داشته باشیم به کسانی که سابقه بر ابن عربی هستند در بحث وحدت شخصی وجود در میان مسلمانان و در مین اینها ما کسانی رو نقل میکنیم که خود ابن عربی با تجلیل از اونها یاد کرده و احیاناً اونها رو اقدم بر خودش حساب کرده و بعضی ها را جز مشایخ خودش حساب کرده که بعضی از اینها تصریح دارند عباراتی در باب وحدت وجود دارند شتهیاتی دارند و بعضی دیگر اگرچه که تصریح ندارند اما این که ابن عربی اونها رو بسیار بالا برده و مقامات بسیار عالی‌ای برای اونها متصوره و طبعا همه این نقامات رو خود ابن عربی متفرعه بر درک بحث وحدت شخصی وجود می داند می توانیم ما این افراد رو هم جزو قائلین به بحث وحدت شخصی وجود در نظر ابن عربی حساب بکنیم که ما حالا یک نگاه مختصری بیشتر فقط به ذکر نام اونها اکتفا می کنیم. برای زیغ وقت و انشاءالله در بحث های مجزایی حالا به بررسی خود این اشخاص که اینها که بودند و این حرفها از چه ناشی می شود آیا نسبت‌های تاریخی که به اینها میدهند درست است یا نیست که بحثیم بحث مجزا از این بحث بحثه شخصی وجود میطلبد حالا لذا برای اینکه ما دنبال سابقه بحث بحثه شخصی هستیم به بعضی از کسانی که خود ابن عربی بسیار به اونها ارادت داره خب یک ذکر نامی می‌کنیم یکی از اونها خود رابعه ادویه است که این متوفی 185 هجری هست که خدا ابن عربی بسیار از اون تجلیل میکنه و اون رو مستقرق در عشق, عشق الهی میداند و حتی حال و مقامش رو هم از مردان بالاتر میداند و تعبیر میکنه که به دین خالص رسیده غیر حق را از نفسش زدوده و تعابیر دیگری شخص بعدی معروف کرخیز که متوفی دیویسته هجریه که این تعبیر و جمله لیس فی الوجود الا الله رو هم غزات همدانی از این فرد نقل میکنه و ابن عربی هم از اون تجلیل بسیار زیادی میکنه شخص بعدی ابو سلیمان عطیق ابن عبدالرحمن دارانیه که خود ابن عربی اون رو واصل عارف واصلی میداند و عباراتی رو هم از اون نقل میکنه که متوفی دویست و هجریه اینا همه سابقه بر ابن عربی هستند شخص بعدی حارث محاسبی است که متوفی 243 و و هجری هست که البته خود ابن عربی با اینکه از اون یاد میکنه اما اون رو جز و عامه طریق عرفان میداند و مقام امثال بایزید رو از اون بالاتر میداند شخص بعدی زنون مصری متوفی 245 و و پنج. هجری که خود ابن عربی اهل سر ربوبی اون رو میداند و تعبیر میکند به شهود آنچه عقلن محاله است نائل آمده که یکی از چیزهایی رو که در عبارات گذشته نظر کردیم بهش که خود ابن عربی وحدت شخصی وجود رو جزو آنچه میداند که برهان آن رو نفی میکند و جزء تناقض سریح اون رو میداند اما خب زنون و مصری به تعبیر ابن عربی به آن رسیده است و کرامات عجیبی رو حتی به زنون مصری نسبت میدهد. شخص بعدی بایزید تیفور ابن ایسای سروشان بستامی متوفی دویست و شست که ابن عربی اون رو جزوه مشایق خودش می‌داند. به تعبیر شیخونا ابو یزید از اون می‌کنه اون رو جزوه اقتاب حسابش می‌کنه عارف کامل می‌داند، صاحب مواقف می‌داند، اهل سعه می‌داند. به بعضی از مقامات پیامبر اون رو واصل می تعبیرش اینه که چون پیامبر به مقام و منزل ملامیه رسیده به مقام و منزلت از عیسی و یحیی در فنایه از عقل و وجود رسیده و تعابیر دیگری دارد از جمله این که 6200 تجلی الهی رو که برای اولیا امکان دارد این فرد تجربه نموده و خود بایدید شتهیات بسیار مشهور و فراوانی دارد که تنها توجیه بسیاری از این شتهیات فقط با بحث وحدت شخصی وجود هست مثل اینکه انی اینی انا الله لا اله الا انا فاعبدونی من خدا هستم خدای جز من نیست من رو عبادت بکنید و تعابی دیگری که البته بعضی از شتهیات اون حتی با بحث وحدت شخصی وجود هم قابل توجیه نیست که خود این بحث مجزایی میطلبد. شخص بعدی سهل بن عبدالله توستریست متوفی 282 سه هجری که خود ابن عربی آلمون الامام اون رو حساب میکنه شیخنا تعبیر میکنه امامون المتقدم تعبیر میکنه و حجت الله علی المحققین. که محققین رو واصلین مقامات توحید در عرفان نظری گویند خب این رو حجت خدا بر محققین حساب میکنه که طبعا این رو هم متقدم خودش بر بحث وحدت شخصی وجود ابن عربی اون رو میداند البته خب تعابیر دیگری دارد مثلا جمله اینکه در بعضی از مسائل خود ابن عربی استاد سحر رو ابلیس میداند که میگوید مثلا در این مسئله استاد سهل ابلیس بود به هر حال تجلیل زیادی از این فرد دارد شخص بعدی ابو سعید احمد ابن ایسای خراز هست که متوفی و هشتاد و شش 286 است که باز از این تجلیل زیادی میکنه اون رو وچهی از وجوه حق زبانی از السنه حق اون رو میداند به منزله ملامیه که مقام رسول الله هست متحقق شده خب این هم طبعا سابقه بر ابن عربی است شخص بعدی سمنون متوفی 288 هجریه که البته ابن عربی سرودی رو از اون نقل میکنه که برای من در غیر تو هزین نیست هر گونه که میخواهی مرا بیازمای که این رو مقداری سوء ادب نسبت به خداوند متعال نسبت به این سمنون حساب میکنه که طبعا این هم جزو قائلین به وحدت شخصی وجود در نظر ابن عربی باید باشد شخص بعدی محمد ابن علی ترمزی است که متوفی اواخر قرن سوم هجری است که اون رو جزو اقطاب می‌داند، ولی کامل میداند صاحب کشف می‌داند، صاحب ذوق تام می‌داند و حتی کتابی دارد به نام ختم الاولیاء که مورد عنایتش شدیده ابن عربی است که حتی ابن عربی در بعضی از مسائل خودش رو بر مذهب ترمزی می‌داند. لذا خوب این رو هم جزو سابقین بر ابن عربی بر بحثت شخصی وجود در نظر ابن عربی میتوانیم بدانیم ابوالقاسم جنید بغدادی است که تعابیر بسیار عجیبی ابن عربی در مورد اون دارد سید طائفهٔ صوفیه اهل اخلاص اهل سر الهی و علم لدنی اون رو میداند که طبعا رسیدن به این مقامات رو خب متفره بر قول به بحث وهدت شخصی وجود میداند شخص بعدی حسین ابن منصور حلاجه که خوب تعابیر بسیار فراوانی از اون رسیده عبارت عن الحق اون مشهوره و عبارات بسیار زیادی که حتی شدید از عبارت عن الحق هست که خود ابن عربین رو یک جزوه یکی از اشاق حساب می کند و طبعا اون رو جزء قائلین به توحید حقیقی در نظر خودش می داند. البته خب در عباراتی دارد که خود شبلی و مشیص شبلی رو که هم اصر حلاج بوده رو بر اون ترجیح میدهد. شخص بعدی خود شبلیس که متوفی 334 هجری است خود حلاج متوفی 309 هجری شبلی متوفی 334 هجری است که اون رو محب الهی غیور در محبت الهی میداند و شخص دیگری است که محمد بن عبدالجبار نفری است که متوفی 354 هجری است که نوشته به نام در نوشته هایی داره به نام المواقف المخاطبات که الهام بخش ابن عربی است اون رو جزو رجال الله می جزء جزو عرباب مواقف میداند که طبعا این رو هم باید جزو قائلین به بحث وحدت شخصی وجود قبل از ابن عربی حساب بکنیم که در سال 354 هجری هست حالا اشخاص دیگری هستند که باز همین نفیک یک اشاره مختصری انشاءالله در جلسه آینده به اونها خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.